حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر بلک هواد دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازه با اش دل ببندی ازماک دلب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجباک قلب سبز پیچیده توی دنیا از آج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حال احوال تو چطور خوبین خوشین سلامتین من فرشید و اینجا رادیو فینجا پس فردا دوشنبه 25 آبان ماه 94 با شما شماست البته اونایی که تکرار برامر میشنوند سه شنبه زور صدای ما رو میشنوند اونایی که دانلود میکنن میشنوند هر موقعی از سال ممکنه صدای ما رو بشنوند چاکری خب چه خبر ها؟ همه چی خوبه؟ آخه؟ و علی رفتن اینجا یه دفعه سوتو شد سامی همینجا اصلا رفته تو لایک اصلا حرف نمیزنه شهرامم چه سرسنگین شد هرچی میپرسیم نه جواب میده جلال اصلا حوصله نداره نمیدونیم دیگه حالا ان یکیشون یا شاید هم جفتشون برمیگردن تا آخر فصل اینجا با هم هستیم شاید هم هیچ کدومشون ها والله هر چیزی امکان داره دیگه قبلش دو تا از برانده‌های آقای لیگ رادیومون هم قرار دو روز اینجا مهمونه استیدیو باشن اینه که هفته بعد نه دو هفته دیگه اینجا رسمات سیویل پارتیه دیگه گفتیم از الان آماده اون سیویل پارتی باشین دیگه خیلی دیگه سیویل پارتی همیشه که سیویل پارتی هست دیگه اون موقع خیلی دیگه سیویل پارتیه خب دیگه بریم سر کار زندگی خودمون همونجوری که میدونین این هفته داریم در مورد کتاب و کتابخوانی صحبت کنیم. امروز می‌خوایم سعی بزنیم به دنیای نویسنده ها و چند تا کلاس داستان نویسی رو با هم مرور کنیم البته حالی هم به بعضی منتقدین به اصطلاح ادبی بدیم اینه که سف بشین امروز خیلی تکون تکون داریم ها پس برو به نه نرو نریم وایسایل از یه چیز جامونده قبل از اینکه برو بریم رو بریم بعد یه سلام همچی مخصوص دروخ شخاشی بکنیم خدمت همه نویسنده‌ای که با همه این سختی ها و سانسور و تیراژ پایین کتاب همچنان کارشون رو با جدیت و علاقه دنبال میکنن با قلمشون برای ما دنیاهایی رو خلق میکنن که گاهی که خسته میشیم از روزمرگی ها و زشتی ها و تلخی های این دنیای واقعی به دنیای خیال و داستان و کلمات پناه ببریم بلکه یه مقداری حالمون بهتر شه حالا برو بریم خواستم یه کتاب رومانتیک عاشقانه درام بله. خیلی عاشقانه است خیلی برای تو معرفی بگو. کنم شاید به درتون بخوره آره با نویسندگی آقا گوچانی نجفی به اسم یا خدا بعد از خوندن این کتاب تمامی اعضای بدنت به تمامی گناهایی که کردی جلوشش خودت اعتراف میکنن چی بود چقدر ترسناکه یعنی انقدر همین کتاب هست که یارو رو میره اون دنیا اونو انواه و اقصام شیزارو میبینه دیگه من تعریفش ما شنیدیم نمیدونم حالا هنو جورت نکردیم بخونیمش مرسی بابت معرفی اما امروز کلن دمای زیر سفر نداریم توی کشور و گوشی که کرد دمای هوای نمی بالا از فردا کم کم باز باد و بارون شروع میشه از اون بالای نقشه یعنی از گوشه راست گربهه کم کم عبرا میان, میان. بعد میرسم به گوشه چپ کم کم شمال غرب و غرب کشور بارونی میشه بعد میره شب همچین میاد تا اواخر سشنبه یعنی فردا شب همین موقع ها برسه به تهران سمت خوزستان و لورستان و ایلام هم فردا نه ولی پس فرد این چارشنبه اعتمال داره باز آب گرفتگی و سیل و این بسات ها رو برحال داشته باشیم دیگه دوستان لور و خوزستانی و عرب ما حواظشون باشه باز غافلگیر نشین یه وقتا گفتم ها پس ها یا مخفض دو تا خانمی جدیدی که به جمعتون پیوستن. من از اون بودم که هیچ وقت لای کتابم باز نمی کردم. یعنی اصلا دوست نداشتم کتاب بخونم. تا اینکه با همسر و سبیم که آشنا شدم. واسه اینکه کلاس بذارم و میدونم این خارجی اهل مطالعه من هم. منم هم گفتم من عاشق کتابم، عاشق مطالعه هم. اونم نوامری نمی هی واسه hey, من کتاب کدم می خرید. بعدش هم می پرسید. خب مثلا نظرت چیه به اینو؟ اینا دوست داشتی یا اون یکی رو منم خب مجبور بودم بخونم دیگه حالا بله اینقدر زور زوری کتاب خوندم زور کتاب خوندم تا اینکه شدم یکی از طرفدارای پراپا قرص کتاب خوندن بله بله الان یه کتابخونه خیلی خوب و بزرگ توی خونمون داریم که همه‌شو تقریباً مشه گفت خوندم دیگه چه که آدم واسه شوهر پیدا کردن انجام نمیده دیگه <تصفح> تبسم هستم از مارسی فرانسه حالا اگه فارسی یاد گرفته، وقت نوش شوهرت میگن شوهر شد سبب خیر اگر خدا خواهد هم ها ولی انگیزه بالا بود نه خوش انگیزه بالا بود اگه جای مطالعه و کتابخانی و اینا مثلا چه میدونم میگفتی عاشق فلان مثلا ورزشی و اینا بهتر بوده. احتمالا تا الان چند تا مدال المپیک گرفته بودی و این همه واقعا این همه تلاش و کوشش برای کتابخانی در جهت شوهر مدتی پیش آیه قرائتی صحبت کردن در مورد کتاب و کاربردهای های کتاب که جالب بود بشنبیم ما کتاب رو دوست نداریم. ما کتاب اول سال میخونیم کتابی بعد هوا داغ میشه میشه بازن بعد بخیرم بشینیم میشه موکت میزنیم کتاب میشنیم بعد دوام میشه کتابیم ای تو لوله میخونیم و وقتی لوله کردیم یعنی هم کتابه هم چماقه هم بازنه هم موکته ارزش نداره بره ما کتاب. راست میگه دیگه راز کامل نگفتن. به غیر از این مواردی که اشاره کردن کتاب کاربردهای دیگه ای هم داره ها. مثلا اینکه از مهمترین و بیشترین مصارف کتاب توی بعضی خونه‌ها اینه که وقتی میخوان غذا رو مثلا با قابلمه بیارن سر سفره، یه کتاب می‌ذارن زیر قابلمه که سفره یا موکت فرش اینا نسوزه. این یعنی کتاب در نقش زیرقابلمه ای. هیچیش هم نمیشه. یعنی گذاشتم که میگم ما می‌دونیم ما. یه مصرفه دیگه‌اش هم اینه که به جای دمپایی برای کشتن سوسک و مگس و این چیزا استفاده می‌شه. بعضیام لای کتاباشون آخه برگ گل و برگ درخت و اینجور چیزا میذارن خوش میکنن یه وقتی هم کتاب میره زیر پای کولر یا زیر پای کموت، ماشین لباسشویی یخچال اینجور چیزا اینا لغمی خوره یه وقتی لازمه دیگه چون بعد توجه به قطعه کتابا به حال تنظیم میکنیم اینو یعنی کتاب در نقش لغیگیر هم استفاده میشال باز هم هست یعنی کلا کتاب در زندگی ماها خیلی کاربرد داره منتها دی فرصت نیست همه رو بگیم دیگه خودتون بهتر از من میدونین دیگه امروز رادیو پسورده شماره 932 میره سراغ کتاب و نویسنده گذران عمر و تأمین اجار خانه از راه بازی با کلمات بیانیگه شماره 932 بدانید و آگاه باشید که با وضعیت امروز کتاب نویسندهی که یک سال وقت می و کتابی می نویسد و بعد از گذر از هفتخان آن را چاپ می کند. حتی اگر کتابش با اقبال مواجه شده و به چاپ دوم و سوم هم برسد در نهایت پولی که دستش را می گیرد به اندازه حقوق یک ماه یک ماهی نیز نیست پس چنانچه از نویسندگی به دنبال امرار معاش و کسب درآمد هستید همانا از آب در هاون کوبندگانید امزاو جمعی از بیخیال نویسندگی شده ها و دنبال یه کار آبدار کارمندی رفته ها و الانم ای اوزاشون بدک نبوده های رادیو هست فت نموگا بو میکردن کتاب ها رو یعنی مم. کتاب آنها نمیدنم برای چه جوری بودن ولی من اول سال تحصیلی کتابارو رو بو میکردم یعنی ریاضی رو تمر رو ریاضی فارسی اجتماعی مدنی هر کدوم میومد نو بود دیگه اول سال تحصیلی شروع میکردم تک تک اینا رو بو کردن الان که یادم میاد کار من شاید کومیدی بوده نه بوده. ولی الان... نه <laughs> عربی. نه نه اصلا همه همین جور بودیم نه راست اصلا یه بوی خاصی داشت با فرهاد هم خونده بود دیگه در موردش میگفت بوی ایدی بوی توپ آه نه این چیز نبود اه... کدوم بود؟ بوی کاغذ رنگی نه اینم که نیست بوی اسکناسه تا نخورده یه. نه اونم که بوی اسکناسه اینم نبود چی بود پس؟ بله آها آه نخونده بود یعنی اینو اصلا بچه ها میگن نه آقا بوی کتاب بوی کتاب نوی اولس بو... آقا اشتباه شدی کاری ولش کن کتاب بو ما مارم به اشتباه میندازی همون بوای خاصی داشت شما راست میگی بله بله میگن این خانم جی رولینگ نویسنده هری پاتر وقتی تازه اولین قسمت این مجموعه رو نوشته بود هیچ ناشری نبوده که قبول کنه کتابش رو منتشر کنه منطب بعدن که کتابشون منتشر شد و هری پاتر به اسطوره تبدیل شد الان دیگه خوبیشون واسه خودشون تبدیل به ستاره شدن و پولی که از رای کتاب نوشتن به دست میارن اگه از فلان بازیگر و به با اما فوتبالی سوینا بیشتر نواشی کمت همه اینا رو گفتیم که در جریان باشید که در تاریخ ادبیات مدرن ایران هیچ نویسنده ای نبوده که بتونیم بگیم مثلا از نظر بخت و اقبال مالی و حرفی حتی به گرد پای خانم رولینگ برسه اصلا دلیلش همین نیست که ما نویسنده خوب نداریم ها اصلا دلیلش اینه که اصولا تو جامعه ما کتاب یا شعه اضافیه یا تزینیه یا درسیه یا هم که تو انباریه و همین د اقتصاد نش تو ایران یه چیز تو مایه دمدگر یعنی کتاب منتج میشه تیراژش هزار نسخه قیمتش هم مثلا چه میدونم 10000 تومان مردم هم که مثلا برای یه پیتزا آقا برای یه پیتزا به راحتی 20000 تومانو میدن به کتاب که میرسن اوه اوه قدم که گران شدهشون میره بالا به راحتی کتاب خریدن بی خیال میشن بنابراین نویسنده و ناشر بیچاره میمونه و وحوش دو حوزی هم که نیست حالا خیلی کتاباش که نویسنده بیچاره یه عالمه وقت گذشت و عرق ریزان روح کرده و نوشتتش نوجره بیچاره هم خب سرمایه گذاشته برده چاپش کرده منتهی به بازار فروش که میرسه میبینه مردم پیتزای قارچ و گوشت رو به کتاب ترجیم میدن. البته کسی منکر خوشمزه بودن پیتزا نیستا. بله بخورین نوش جونتون بخورین. ولی بله خب دیگه آخه دیگه به حال بد بگیم آخ صنعت نش. آخ نویسنده ها. آخ. آخ. آخ ما ها که سرانه‌ی کتابخونی مملکتمون از یه چشب هم زدن یه خورده بیشتره. آخ. آخ. این هفته گفتیم به همون بگید چی شد که سرانه مطالعه ایرانیا انقدر اومد پایین چرا؟ خسته ای ما گرفتاریم تقصیر اینترنت، تقصیر فیسبوک، تقصیر تلگرامه از آقا مشکل ما ایرانیا با کتاب چیه آخه؟ بگید به همون. گفتیم با خاصیت ترین کتاب رو که تو زندگیتون خوندین هم به ما معرفی کنیم من یکی از که به همه پیشتاد میکنم بخونم کتاب قله حیوانات هستش واقعا کتابی که مスタق واقعیت تمام انقلاب‌های دنیاست و بیادمی که وقتی که بچه بودم یکی از کتابایی رو که خیلی دوست داشتم و داستان بود و همیشه می‌خوندم مثل اون آقای که همیشه شبای امتحانات زیری کتابش می‌ذاشت کتاب برادران شیردل بود که یادت باشه یه مدت از برنامه کودکم فیلمش پخش می‌شد واقعا خیلی این کتابو دوست داشتم و چون فیلمش رو دیده بودم همیشه وقتی کتاب می‌خوندم شبا اونو توی خواب دوباره یه بار دیگه مرور میکردم قربونه تسام هم هم قربونه تسام عزیز ممنونم از این که معرفی کردی این که تا برادران شیردل هنوز هم هستن ها. هنوز هم هستن نگران نباشه یکیشون شده رئیس قفه قضاییه اون یکیشون هم رئیس مجلسه سومی هم تو کار بیزینس و اینجور چیز هستی ما هم هر روز داریم مرسی از میکنیم متشکرم. اما اگر خواستید با ما در تماس باشید پس فرد فرداعت یاد سارا و الی افتادم که اینا رو میخونم نمیخوند عشق دو چشم جمشه بچه ها اصلا اینقدر ناراحتن گفتم سامی جلال شهرام اصلا اینقدر جاشون خالیه این بچه ها هی بابا هی بابا پس فرداعت ایمیل ماست دو سف و و پنجو پنج پنجو پنج شماره های سمت و در فیسبوک گوگل پلاس کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون پیام بذارید برمون کامنت بذارید شماره تلفن های وایبر واتس اپ و تلگراممون شماره تلفن نه تلفن های یه شمار تلفن دو در کانال تلگرامی ما هم میتونید جوین بشید و تلفن های پیامگیر ما دوسف 420 22 11 24 133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرند دوسف 420 226 21 79 39 نیستی حال من خرابه نیستی دستم سرد سر چشمم 199 خانم آقا پسرها میگن که یه هاج آقا نبویانی هست که قبلا ایشون تو تلویزیون هم برنامه‌هایی داشتن و ما هم اینجا یکی از به چند تا از این برنامه‌ای که کارشناس بودن و کارشناس مذهبی بودن و اینا صداشون پخش کردیم و حالا ظاهرا میگن مدتیه که ممنوع ال تی وی شدن کلا به نظر میاد ایشون خیلی علاقه به بودن سر روی تنشون ندارن یا چه میدونم به یه شکلی عوامل استکبار یا جاسوسان خارجی چیز خودشون کردن که اومدن و دربار آقا یه همچین حرفایی میزنن این آقای روحانی یعنی آقای آقا نقویانی شما هم سعی کنین چیز زود ایمان نیارید ایمان بیارید وقت مجبوری هرچو آقاگو هم دنبالش بری هرچو میفهمی آقا داره نیست که اشتباه میکنه ولی چون ایمان آوردید دیگه هرچو گو باید بری چی میگی بابا شما آقا نبویان آقا و اشتباه حالا آقا آل یه اشتباه کرد کمل من... کل مملکتو داد دست سپاه حالا خودش هم زورش به سپاه نمیرسه. اوکی والباشی با یه اجتماع دیگه کرد کل مملکتو دست عثمان محمود عثمان محمود بالای سر مملکت آورد 600 سال بعد همه تو کار رفع بلاش باشن. باش حالتی حالا دی... با یه اجتماع با با با با کرد بابت با حمایت سزبل الله لبنان و بشار اسد و عسیای یمن یا عالم منافع مردم و کشور خودشو به باد داد کاری نکرده که آقا اینقدر چه محال اشتباه با اجتماع می‌کنی بابا <تصفيق> یا یه جای دیگه مقامات معنوی آغارایشون تو روز روشن می‌برن زیر سوال اه؟ آقا اهل کشف و کرامات باش مرتضا والا بله کشف کرامات آقا خبر از غیب میده مرتضای هندی هم خبر از غیب میده همچین راعدن خیلی هم الحمدلله خدا اینا رو گذاشته که ما یهو گول نخوریم عجب یعنی مقایسه مقام معذب رهبری با مرتضای هندی رو من تا حالا دیگه نشنیده بودم ایشون زحمتش کشید البته مرتضای هندی معمولا خیلی که کارشون درست میشه وا پای برهنه میرن روی زغال داغ راه میرن این معجزه معجزه‌شونه یعنی این آقای مملکت ما هم یک معجزه‌ای داره که معمولاً تو ها میره اون پس پشتو قایم میشه بعدا اگه اتفاقا به نفع ایران رقم خورد پره بیرون میگه مثلا این رهبریه من بود که موفق شدیم اگرم به زرر زرر ایران بود که بیا همون تو پسو میمونه یا هم که میاد بیرون میگه دیدید دیدید من گفته بودم اینجوری میشه حالا کی جرأت داره بگم نگفته بودی شما کی جرأت داره البته ظاهراً آقای نقویانی خوب جرأت داره خوب حتی مؤزمله رو اینقدر جرأت داره مؤزمله رو هنر خطاب کنه آقا موقع در حچبری با 4 نفر امرا آقا برن اینا بازیگریه با همین صراحت که دارم بهت میگم تو هم هنرپیشه ای داری مرا س... چخام آخ... میکنی داری سر مال شیره میمالی آخ... اینا با دنبال راه بیافتند من چی بگم الان البته همه میدونیم که معظمله انقدر محبوب هستن که الان تک و تنام میام بیرون همه مردم ایشونو که ببینن فقط لوپشونو میکشن مثلا باشون سلفی میگیرن و اینا اما ندیگه در این حد که شما توقع داری دیگه یعنی ایشون هر جا میره بدون خدم و حشم و محافظ و اینا بره به نظر شما مییشه مگه داریم خلاصه دوستان پیگیره این حاج آقای نبویان باید باشیم چون ایشون تناکاری که نکردن الان پاره کردن عکس خداست این معظم رو که عکسشونو که هیچ خودشون هم مورد انایت ازما قرار دادن دیگه ماشین مشتی ممدلی ارزونو بیمو ماشین مشتی ممدلی نه بغداره نه سندلی تو اشالا این همه کارتون مارتون پر کتاب کردی کجا میخوایی ببری آخه سیکارشون میخوایی بکنی زونتو تو سرده بیا ببریم از آتیش باتیششون بزنیم گرم شیم حسابی دیگه <تصفيق> زو نه همین کتابو بی خیال بابا همه که پره بودن که کتاب مرغوب دیگه چه مودلش داشته یعنی گرون مرونه زونه من ای بل بابا یعنی از رای کتاب متاب فروختارم پس میشه چی نون درآور آور داره سه بالا از همه چی تو این مملکت پول در میاد جز این شغل مزخرفی که ما داریم والا به خدا یعنی از صبح تا شب تو این خیابونا میریم مالا پایین واسه دو زر سه شایی چی تیله به داشته ای تو این بازار کتاب متاب برحال نون خوب است و یه گرا مام ما به مالا خسته شده از این شغل زونتو. زونه تو زونه و خرابه ای بابا خوبالا یعنی شما دقیقا اصل كارت تیه آه آ سه بحال یعنی مینی میگردی تو این ها ببینی مردم کتاب متاب بالسی دارن ازشون میخری دیگه اره آآ آگهی ماگیی میدی ملت زنگ میزنن ایوخت آره دیگه بدون آگه که واسه این نونخشکی تو خیابون داد بزنی کتابیه کتاب <تصفيق> والا پس اینطور پس بعد قیمت به پایین میخری میبریم میفروشی فروشی اینسی کتاب فروشا با اینا مانه بالی ها من تا اون وقت چه دوره میفهمید چه کتابی چقدر نون توشه داشت آمیش راستی کتابا رو ایوال یعنی درس مرسشو دیگه نه رشتر بود چون هوافزا زون من چی رب داره داشتم شما الان سی روغن موغن سفینه مفینه عوض کنیم راس راست با کی توی مملکت سر کار خودشه که تو باشی کتاب متابا رو اشراسیف هست خب الان کتاب قدیمی مدیمی خوب تی تو بورس داش، چی داری تو دست دستوالت بدیم زونم شوهر کیه؟ شوهر آهو خانوم؟ سی این اسم کتاب این؟ شوهر آهو خانوم؟ تسمه بالی میگم یه دونه خارزنه مهبش خانوم اینا نداری با سازر کنی <laughs> ها ترکی دست خنده خوب همی خندی آین خودم ای با دیگه ما این رو نگیم نخندیم گوش بی ترکیم اینزا دیگه <laughs> ای با دیگه جونم همین این بقل تش بزر رو بگیرم بیام مغل که یار دردونه من کمتر برام ناس و روش پیرهنی که دوست دارم به خاطر من بپوش چرا وقتی قل میری سر وده نمی مگه منو نمیخوای سر وده نمی مگه منو نمیخوای خوای ای دختره آزری من عاشق هستم بیا که آشقانه دلبشت تو بستم ای دختره بازری عاشقت هستم بیا که عاشقانه من به تو دل بستم باشوا دنم دالانم گر منم مارالم باشوا دنم دالانم گر سنه منالان یارت یارت یارت دردونه من کمتر برام نصروش پیرهنی که دوست دارم به خاطر من بپوش چرا وقتی قلم می‌دی سر بعد نمی‌دای مگه منو نمی‌خوای سر بعد نمی‌نیای مگه منو نمی‌خواد آقا من یه اعتراف بکنم نه از طرف خودم و از طرف خیلی دیگه من بر بچا دور برم اصلا با یه سوزن به خودمون بزنیم یه جوالدوز جووالدوز به مردم دیگه به قل یارو گفتنی همیشه اصولا دانلود یعنی دانلود بازی و اینا کلا کار جذابی بوده برای ما ایرانی ها دیگه همینجور دانلود میکنیم دانلود کتاب هم یکی از این موارده الان که تازه یه عالمه وبسایت دانلود کتاب و اینا کم بود خود ما هم خیلیامون از وقتی که این کانالای دانلود کتاب تلگرام را افتاده عین موریانه تو این کانال ها هم... کانال ها همینجوری میکنیم هی دانلود میکنیم نگامون هم که میفته مثلا پشت کتاب نوشته قیمت مثلا اینقدر تو هم نوشته کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ میباشد. حواست یا نه. مون تو دکمه دانلود رو میزنیم کتابو به گنجین های خودمون اضافه می که تمام چارچوب های قانون حفظ حقوق مؤلف و ناشر رو اینا همه به لرزش در میاد. مون ما داریم دربار ایران حرف میزنیم دیگه اون بیچاره بنده کفش کسی هم بگیرن که بابا دارن اموالشون و کتابشون اثرشون رو دانلود میکنن. خود من یکیش بیا به هر مرجعی هم برن بگن مثلا نگاه عاقل اند در مؤلفی بهشون میندازه میگه نفر بعدی لطفا نفر بعدی برو بذات بیا این بچه همسایی ما هر بار بهش بگی چی کاره میخوای بشی؟ یه شغلی رو میگه اما چند وقت سوزنش رو نویسنده گیر کرده. یعنی این پرسی سان جان چی کاره میخوای بشی؟ میگه نویسنده. یه دیروز که تو راه رو دیدمش نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم گفتم آخه فسقلی تو که هر دفعه یه شغلی رو می‌گفتی چی شده تازیکی فقط میگی نویسنده؟ یعنی جدی جدی میخوای بزرگ شدی نویسنده‌ای؟ گفت بله می‌خوام نویسنده‌شم بعدم پولدارشم. بچه جان نویسنده که پولدار نمیشه نویسنده هنر کنه خرج زندگیشو در بیاره هشتش که روی نهش نباشه گفت نمیفهمم هشت با نه چند میشه ولی اون نویسنده پولداره که دیدم بلد بود همش عدد مینوش رو کاغذ کلاً که من شاخ درآورده بودم تا بالاخره مامانه لایدر خونش نو وا کرد ببینم بچه چه میکنه؟ که ازش ماجرا اون نویسنده پول داره که همش عدد می‌نویشه رو کاغذو پرسیدم و معلوم شد دوست مامانه مدیر یه شرکت حسابداریه خانم وازش هم توپ بچم دیده خانمه همش سرگرم نوشتن فکر کرد لابد نویسنده است دیگه نویسنده کسی که می‌نویسد حالا خوب پرسیدم ماجرا چی بوده وگرنه منم داش باورم میشد میخواستم برم این کلاسای نویسندگی در دهجله ثبت نام کنم پولدارشم والا دیک نگرانی ما از خود تاهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. کامران ملکپتویی سلام. سلام فرشجان سلام همگی. چه خبرها؟ ا عرضم خدمت همه که از چهارشنبه آخرین ساخته سیف سال کارگردان پیشکسوت سینمای ایران به اسم این سیب هم برای تو نمایش شروع میشه بخش از فیلم رو هم بشنوین تا برسیم به توضیحات بیشتر بشنوین جفتمون همه چی رو میدونیم پس بهتره بریم سر اصل مطلب. چرا تنها اومدین؟ همسرتون کجاست؟ من ازدواج نکردم وقتی. بابا ترخسته داشته باشه؟ من اورورزم ضعیفه. می‌خوام ببینم تو. این مشتگر جان فیشادم لواس. باز. این بازی‌ها یعنی چی؟ کدوم باز. مسافرت با پدرم. رابطه تو و پدر من چه معنی میده؟ اصلاً چی هست؟ ما می‌خوام در مورد ویزا باهاتون صحبت کنیم. این روزا همه میخوان در مورد ویزا با ما در صحبت. تو با یه نقشه حساب شده اومده سراغتون. اصلاً تصورشم نمی‌کردم یه دختر بتونه اینقدر شما رو تحت نفوذ خودش قرار بده. بخش از صدای فیلم این سی به هم برای تو ساخته سیروس سلوندو شنیدیم. بازیگرای فیلم کیان کامران. بازیگرای اصلی فیلم تژمان با بازی آزادیور چنگیز جلیلوند، امیر دانایفر و پریناز یزدیار هستن. فیلم یه فیلم ملودرام خانمالگی. بسیار خوب بریم سراغ موسیقی کامران. آره بریم. اتفاقاً روزی ات خبر بامزه هم دارم. امیر تطلو خواننده ترانه یکی از پشت لباستو می‌بنده در قدیم. <تصفح> <تصفح> <تصفح> انرژی هستهی فعلی که معرف حضور همه هست جدید ترین پستش تو فیسبوت نوشته بیاین کاری کنیم فرج امام زمان نزدیک بشه اون وقت نگفته خب چی کار باید بکنیم؟ نه کارشو مشخص نکرده نه دقیقا نه. اما یکی از کامنت های پای پست خیلی بامذرست یکی اومده نوشته تو خودت از نشانه های ظهوری عزیز جان <تصفح> <تصفح> بله میشه گفت اونجوری هم دیگه چه خبر؟ آره میشه. <تصفيق> والا امروز قسمت جدید سریال شهرزاد ساخته حسن ساعتی به بازار نمایش خانگی اومده با این تفاوت که ترانه تیتراژ پایانی که قبلا با صدای علیرضا قربانی خونده شده بود جاشو داده به ترانه کجایی با صدای محسن چاوشی و همخوانی سینا سرلک. بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز باد خدافیزی می‌کنیم تا فردا و میریم بخشی از ترانه کجایی با محسن چاوشی و سینا سرلک رو تا فرد شب یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و عصر جمعه بریبی غریبی حصرو یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی جهانی دروب یه دنیا بروب و یه درد امیغ و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه قلیز و یه دنیا محال تو سینم گذاشتی رفیبم کجایی دقیبا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیبم کجایی دقیبا کجایی کجای؟ کجای تو بی من I love man, for joy با سلام میسریکوسی دوشنبه شب را ضمن وحشت از اعلام احتمال بروز عمله تروریستی دیگر در کشورهای اروپاوی با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماوی تسکیری دویش هزار نفر در شش ماه اول سال به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر و نظر کارشناسان که تازه این دیوی نفر اونای یعنی این که مایه ندارن رشبه بدن و گیر میفتن مایه داراش که تو این آمارا اصلا حساب نمیشن کشفه جدید دانشمندان مبنی بر اینکه گاز سوسک پنج برابر بیشتر از گاز انسان قدرت دارد و خوشحالی ناظران از اینکه که آجاقا محسنی اجری که در گاز گرفتن متهمان سابقه درخشانی دارند خیلی نمیتونند دیگه خطرناک باشن و بازدیده رئیس سازمان محیط زیست از تمرین یک گروه موسیقی و توصیه کارشناسان به ایشان که خب پس به وزیر ارشاد و رئیس دفتر موسیقیشن بگو برن یه سرخوزستان تکلیف این بالونایی که مردم رو مریض کرده روشن کنن مهمترین نناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بول. Bom salão. سخنگوی نیروی انتظامی درباره روش برخورد جدید با خانمهای بدهجاب گفت از این به بعد خودروی این افراد ممنوع خدمت شده و نمیتوانندان را خرید و فروش کرده عوارس پرداخت کرده و هیچی از نیازهای یک خودرو در طول یک سال انجام نخواهد شد یکی از کارشناسان امور برخورد با بیهجابان در کشور در همین رابطه به خبرنگار ما گفت احتمالا در آینده نزدیک پلیس کشورمان با انجام اعمالی چون آتش زدن ماشین بدهجابان چپ کردن آنها در محل دستگیری و یا خط و خشن به نحوی مقتدرانه با آنها برخورد می که دیگر شاهد پدیده شوم بدهجابی در کشورمان نباشیم و این مشکل کشور هم مثل مشکلات دیگر به بوطه فراموشی سفرده شود پایان مرشوه اخبار در ادامه خبری که لحظاتی پیش هم کارم بلبل به بل بل سمعتان رساند تمکنون در خدمت کاپشناب صنیعی اطلاعتی انتظامی برنامه ماله. یعنی جواب آقای جواب سرهنگ هنگ کسیم را در جریان جزئیات این خبر بزارد. بله بنده در خدمتت. ای بله،, بله. سرنگ آخه این چه کاریه؟ بله. آخه با ماشین مردم شما چیکار داری سرنگ؟ ما با ببینید بالاخره پلیس برای اجرای قانون یه سری ابزار، های رو در دست داره. و یکی از اون ماشین‌های بله. فرادسته این آقا جون. الان ببین مثلا من بدهجاب حجاب، خب شما که بدهجاب حجاب نیستین. مثال میزنم دیگه. این همکارم بلبل مثلا فرض کن. بله اتفاقا بنده داشتم میدیدم خواهر بلبل، بلت بلن، میتونن از من سادیقی با حجابی، ماشن وقتی داشتم می‌رفتن ما می‌ذاریم مثلا بزنم یا نه بفرم. آره بفرم. میگم الان مثلا بلبل رو شما گرفتین چه می‌دونم یه کاری کردین که ماشینش که دیگه روی مالیه خلیه بشه خب, خب دیگه قانون ببینید این اختیار رو به ما میده و این میدونم با سلفه باشه بفرمایید پس مثلا این مثلا باباش مریض شد افتاد بیمارستان خواست ماشینش بفلوش خرج دوا درمون کنه این تکلیفش چیه ببینید این, چی... این قسمت آه. ها مر بود به ما نیست ما قانونی اجرا میکنیم تا افراد مجبور بشن رایت کنن آقا جون عجب یعنی ای وای من با... یادم رفته بودی میسائل کنی. آقا عزیز این موبایل خاموش کن. ای بول بولی کاری از آخر. بله. الو. بله. با بله. بل بولبول من سال برنامه‌م. چی الان بوده؟ چه گریه می‌کنی؟ تو میخوام توقیف کنن. واسه چی بد پارک کرده بودی؟ ای. واسه بحث اجابی. باشه، نه نه، خیال درادر سرنگ اینجا سن ردیفش میکنن. بندر میفرما. آها، گری نکن ما حل دیگه. سرنگ رفیق خدا یعنی چی چی؟ آها، اون بیسیمو بعدا به این رفیقات بگویین ماشین کنه ما رو برد کنه. وایره شما از هم کاری یعنی همین خواهر بال باله؟ نه، خواهر قناریه، علی دیگه. واه یه دونه بلبل که بیشتر نداری. یه دقه بیسیم بزن بگویینه ردیفش ما متاسفم ایشون متخلف بودم، من خودم به قندیده استوردادم ماشینیشونو توقیف کنم. غندی داره سرهنگ من احساب بحساب بله ندارم میرم میگیرم این غندی رو لش میکنم بله خود تا کار به جای باریک نکشیده یعنی جمعش کن سریع شما بی جا میکنیم به بله معمولی قانونه ها کنی کنیم من خودم با شما برخورد میکنم در اون صورت الان ما در یک دوراهی قرار گرفتیم خواه؟ خواه؟ این با هم حرف بزنیم و مشکل رو حل کنیم یا اینکه من بزنم همه تون رو از دم له کنم بعد اسمم به امان یک قهرمان بله که تاریخ جافدانه بمون خودت انتخاب کن ب... سرنگ ببین؟ شما خیلی میجام جام میکنی با ماموری قانون این طوری حرف میزنی آقا جو نه سرنگ این جمله بال بود فقط خواستم جمله رو بگم چیزی ببین سخ نگیر دیگه هلا. بگم این بلبل شوهرش دکتر مکتره و ازشون هم نیست نیستن این تو رلیفه. بگو بگم بگم چند بده می سه بکیادشون بگو خجالت بکش شما به من موری قانون پیش نادرش و می من, با, من با شما برخارد کنم می دونم رقم بالا چیز تیگه دو... بگو با می حساب کنن این دکتر مکتره خوب می گیره بگو بگو, بگو بول بولم خوب می دیم ساکت باش ببینم مرکز مرکز ماردی امنیاتی با... پیشنا عادی رشت و پیش اومده است من ندارم ماردی امنیات میشم مرکز سرهنگ بابا بی خیال اون بیشیمو بذار چنان بیا آقا... مرد و مردونه با هم حرف بزنیم بابا میگم رقامتو بگو حل ندیگی حرف نباشد آقا شما دست ساتو بیانجیلا ببینم حلیلی زلتی اون بیشیم و اسرهشو میکشید حرف نزد سرهنگ من من میجون ببین این ها در کودکی تو ریشه دا... اجازه کودکی با... سختی داشتی تو سرنگ کاملا متخلفه اینو تو چه دل داری این کارو میکنی ما دستا تو بیاد جلوی امام بدم کی تو کودکی مشکل داشت است اجازه بد آقا تا حالا ناكون ببینم ای وای سیدی دقیقه خدافجی چرا من نگاه نذیش بفرمایید اجازه باشی درنگ اولش از اینارتو فوت تمیشه میکنه همیشه بدرام میشه دیگه همین تا دمی در میدیم دست وا میکنی تا برنامه یی دیگر با سرنگی دیگر خداو نگهدار بیا ای اینجا آقا جواب با پس که باید دوتا نمیبینم آقا اون 100 بای دو تا نفس آقا چی چی چی میگوها شو این حرف چی چی رابیو ببینم رابیو تحت چا سلام. سلام مرسی از تشکراتون تشکر سلام. لازم نبود واقعا گفتم بعدش هم که سعیتون رو بکنی با جلال و شراکیم و شهرام و سامی و اینا دست به یکی کنین این گول آخر آخره همین همین پسری که اسمش نمیگم با آره. سارا و سارا سا. همون آره هر آره. همون آره. آره. منه این قول مرحله آخره این اه. خیلی قویه اینو بعد همه با هم دست به یکی کنین این کارو بکنین مگه نه نمیشه آره قربونت راستی اسم من علی رضا از تهران زنگ میزنم منم منو میگی گوله مرحله آخر چرا آخه؟ چ... آقا اصلا چرا آخر بازی همیشه گوله مرحله آخر باید کشته بشه من نمیفهمم چرا یه بازی درست نمیکنم با گوله مرحله آخر بشینیم یه چایی بخوریم دوره هم بگیم بخندیم از سختی های مراحل بازی تعریف کنیم براش این گوله های مرحله آخر گناه دارن به خدا خیلی تنها خیلی عشقی چش سامی و شهرام چش عش هولان خانم آقا این دختر خانم آقا به پسرها نویسنده شدن تو ایران زیاد کار سختی نیست چون کار نویسندگی مثلا مثل کار موسیقی نیست که یه مقدار اگ ناشی یا بی استعداد باشی مثلا خارج بخونی و اینا همه بفهم اساسشون در بیاد تو دنیای نویسندگی ماجرا فرق میکنه اصولا مرز بین نویسندگی خوب و کسایی که ادای نویسندگی رو در میاره زیاد مشخص نیست چون اصولا کتابا که خوندن نمی‌شن که ها خوندن بشن که اهمیت میده اینه که فقط اسم روی جلد کتاب باشه طرح روی جلدامم چه آبرومند و همچین مجلسی و اینا باشه کافیه شما نویسنده محسوب بشین اگه مثلا یکی دو تا دوست رفیقم تو نشریات و مجلات داشته باشین که روی کتاب توی نقد و هنری بنویسن یا دیگه نور علانوره برای همین اگه می‌خواید نویسنده بشین اول سعی کنین با منتقدین ادبی دوست بشین این منتقدای ادبی اگه بخوان از دل یه داستان در حد جنگول و منغول چنان تفاسیر اگزیستانسیالیستی و هرمونوتیکی استخراج می‌کنن به عقل جن نمیرسه به خدا این مراحل طی بعدش دیگه فقط با تیپ و ظاهرتونو تغییر بدین و پالتو و شال و کلوه و عینک و کاپو و سیگار و قهوه و دیگه. تبریک می‌گیم شما با وارد دنیای نویسندگی شدین خیلی راحت به همین راحتی اصلا استعداد زحمت هم نمیخواد امتحان کنین اگه این نشد بیاین هرچی خواستیم به من بگین آتا اینایی که گفتم عمومیت نداره ها قطعا هم نویسندگی خوب داریم تو کشورمون هم منتقده منصف و با سواد و کار درست من دارم به اون کچ و کلاش اشاره میکنم فقط دیگه آره جدی نگید از اونجا که دخل و خرج خیلی از نویسنده ها توی ایران به خاطر تیراج پایین کتاب و گیر کردن کتاب و توی ارشاد و توقیف کتاب ها و اینجور چیزها نمیچرخه یکی از راه های امرار معاششون برگزاری کلاسه نویسندگیه اینکه این, این کلاس‌ها الان چقدر مفیده واقعا کسی میتونه اصلا با یاد گرفتن چند تا دستورالعمل و فرمول نویسنده بشه یا نه از دیرباز محل بحث و اختلاف نظر بوده ما نمیخوایم وارد این مسائل و این دعوای جنایی و اینا بشیم ولی آدم آقا بعضی داستان داستان‌نویسی رو میبینه نگران میشه واقعا طرف دوتا کتاب نوشته هر دوتاش هم رو دست ناشر مونده باد کرده بعد میبینی آگاهی زده کلاساب که داستان‌نویسی خلاق زیر نظر استاد مازن فرض بفرمایید پشنگ پشنگ بود اگه پاشنگ جان قربونت برم من این شما خلاقیت تو که میخوای مثلا یاد بدی و اینا چرا صرف کتاب خودت نکردی اینا موندو چرا صرف کتاب خودت نکردی باد کرده کتابت خوای خب بیل زنی باج خودت بیل بزن بعضی از عجله دارن برای رسیدن مقام استادی از اون ور هم یه دم عجله دارن برای یاد گرفتن داستان نویسی فکر می‌کنه یاد گرفتن داستان نویسی مثلا چه می‌دونن مثل یاد گرفتن تعمیر موبایله برن کلاس یاد بگیرن بیان بیرون نویسنده‌شن این میشه که در کمال تعجب می‌بینید کلاسای اینجوری هم خوب شو لوقا خوب آقا اصلا به ما چه ولش کن یارو که کلاس تشکیل میده راضیه اونی هم که پول میده شرکت میکنه تو کلاس راضیه ما چی کاریم وسط؟ آدم اینقدر بخیل مثل من آیا از کنگود خلاقیت و استعداد ادبی رنج میبرید؟ آیا همیشه دوست داشتید رومانی در حد جنایت و مکافات بنویسید؟ اما هر چطاب امروز نوشته اید، حسنی نگوی دست گل از آده است آیا از بودن در محافل ادبی و هنری لذت میبرید اما شما را راه نمیدهند؟ دیگر نگران نباشید همین امروز در کلاسای داستان نویسی استاد پشنگ پشنگپور پشنگ ثبت نام کنید و اولین قدم را برای رسیدن به نوبل ادبیات بردارد استاد پشنگ پشنگپور پشنگ نویسنده دو رمان محبوب و پرفروش شعله لفظام عشق و عشق لرزان مادر بوده و سومین اثر لرزان ایشان با عنوان سابقی لرزان قربت به زودی به زیبر طب آرابسته خواهد شد دوره های استاد شامل نوشتن رمان بدون دخالت مغز با استفاده از شابلون و فرمول انحساری استاد پشنگپور شنافت عناصر بنیادین داستان شامل عشق، شم شعله پروانه مادر مرد ستمگر و زن ستمدیده از مقدماتی تا پیشرفته برگزاری كارگاههای بحث آزاد پیرامون عشق راستین و مساعب آن در ادبیات فارسی برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جهت آشنایی بیشتر کاراموزان عزیز با یکدیگر. و برگزاری کلاس های خصوصی برای آشنایی بیشتر استاد پشنگپور با عزیزان کلاس های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگپور پشنگ راهیست مطمئن به سوگ دستایافسکی شدن شما فری برز غریب. سلام سلام به همگی فرشی جان فری از هوایشی بازی ایران و گوام چه خبر؟ فردا چه ساعتیه مسابقه؟ والا قبلا یه اشاره کرده بودیم با کلی درد تیم ایران رفت گوام چند تا بازیکنش کنش شد نتونه سمراد خودش ببره بله. زمین چمن مستوی ورزشگاه گوام هم فرشید توش خیلی سخت بازیکن ها گفتن مردش هاشون کوچیک که هزار نفری یه مظدار وسیله اضافه کردن که بیشترش کنن نفراس بازی به وقت ایران ساعت 9 صبح تازه یه خبر جالب در مورد بیلیت دو تا قیمت داره تو آفتاب نصف قیمت بیلیت تو سایه حالا گوام اصلا کجا هست؟ فری برد کجا فوتبال دنیا هستند گوام فرسیید جزیره کوچیک تو اقیانوس آرام غربی جمعیتش کمی بیشتر از سد و هزار نفره میشه شموردشون توسط امریکای جنایت خارمه داره میشه فوتبالش هم تو رنگتین که فیفا سد و پنجا که تیم چهل و سرمه جهانه عجب فریبای تو خبرها من اینجا خوندم گفته بودن ورزشگاه گوام غیر استاندارده درسته؟ آره بازی درست خوندی بازیکن ها همینو گفته بودن خیلی صحبت ها بود چند خبرنگاری ای ایران هم انعکاس داده بودن ام. اما یکی از مسئولان گوام در واکنش به این قضیه گفته ورزشگاه ما درسته که کمنش مسطویه کوچیکه اما از سختش آب تیکه نمیکنه یه گوشه زده بود ورزشکار آزادی اومده بودن آره. بازی رفتشون رو تو تهران انجام بدن فاجی اجازه بده صحبت های دو تا از بازیکن های تیم ایرانم در مورد بازی فردا بشنوید صد دسته بازی سختیه چون بیرون خونه است و خب شرایط آب و هوایی هم هست ولی اینا دلیلی نمیشه صد دسته ان شاءالله بیری بازی سن. باید با تمام تمام بازیکن‌ها خیلی بازیکنان نداریم. می‌گیم که ان شاءالله واسه سمتی‌ها چون ایرانی ما اون گوامه و باید یه ترسی دارم متو ترس برای استفاده کنم بتون پیروز بازی باشیم. کیا بودن اینا آفری بورس؟ اولی جهان علیرضا جهانبخش بود همونی که پارسال که باشه تو هلند در کودافا ریخته بودن ماشینش شو به شوره. بله بله بله. رامین رضاییان بود. خب خدا رو شد تو گوام کسی قرنیس ماشینه کسی رو بشوره همه احتمالا واقعا رو فوتبال فوکس کنن فری من یه چیز دیگه هم شنیدم و اون این که اولا گوام تو این ورزشگاه تا حالا نباخته یکی دیگه که تو تمرینا زیر چشماشونو سیاه کرده بودن من دیدم کیروش سیاه کرده بود باقی بازی کنم خیلی کتا اگه میتونی توضیح به راجع به این داستان آره به خاطر اون آفتاب شدید گوام بوده که کیروش به بازیفان ایران گفته بوده زیر چشهاشون رو با اون مواد مخصوص کرمایی هست زغالی بکنن این آفاچی ها شده بودن آره و اون کی کیروش هم تر گروه بود خیلی خ... واقعا نباخته گوام تو این ورزشگاه تو حالا تو این باز... برزشگاه نباخته هفت امتیاز برای هفته امتیاز هم تو اون ورزشگاه گرفته جب... به سیاهه ولی به هر حال من فکر می کنم فردا میتونیم در مورد پیروزی ایران صحبت صحبت کنیم امیدوارم برده امیدوارم برده. ممنونم از فری برز غریب با خداافظی می کنیم تا فردا تا فردا خودگه الاونت الو الو ازنامه ی آفتاب گزد با اشاره به حضور صادق زیبا کلام در فدراسیون برداری، تیتر زده بود دلیل حضور زیبا کلام در فدراسیون برداری این بنده خلا خوب کارش همینه شب و روز داره مقامات لشکری و کشوری و زرب و دو زرب میبره بالا سرشو میزنه زمین دیگه اتمانا رفته رو تمدید کنه همین. روزنامه ای ابتکار به نقل از هاشمی رفزنجانی امروز تیت زده بود که حضور مردم در انتخابات اسفند ماه نظام را بیمه کند چشم چشم حالا ادقال بگیم بدونیم بیمه چیه آخه بیمه کند شخص سالسه بدنه از بیمه عمره میخواد نظام را بیمه کند اگه بیمه بازنشستگی بود خوب بود لاغر میدونستیم میدونستیم مثلا نظام یه زمانی قراره بازنشست بشه بالاخره. و روزنامه جمهوری اسلامی از قول معاون اول رئیس جمهور خطاب به بابک زنجانی تیتر زده که کسی که پول مملکت را برده نباید از موضع قهرمان برخورد کند پول مملکت رو که از بالا و پایین کم و بیش همه بردن مشالله همشون هم ادعای قهرمانی دارن هم ادعای پهلوانی دارن حالا فقط همین بابک زنجانی جست قهرمانانو بگیره زور میاد به شما آره سطح امروزمونم تموم شد امروز درباره کتاب و نویسنده حرف زدیم راجع به گزاران عمر و تامین اجاره خانه از راه بازی و با کلمات فردا سشنبه 26 و آبان ماه آخرین برنامه این هفته ما درباره کتاب و کتاب میگن که توی زندگی روزهایی هست که آدم حتی اگه دوروبرش خیلی شلوغم باشه احساس تنهایی میکنه اصلا احساس میکنه کسرت این همه نفس دروبرش آزاردهنده است هیچی جاهای خالی که فقط خودشون ازشون خبر داره رو پر نمیکنه تو زندگیش اینجور روزها تو زندگی همه ما هست و اینا هم مثل روزهای دیگه بخشی از ما هستن اما کاری نمیشه کرد جز اینکه آرزو کنیم چون این روزهای نفسگیری تو زندگی هممون کمتر و کمتر باشن شبتون طولانی پاییزتون پر از نفسهای گرم تا فردا از حال هم خبر نداری دوری ما این تنهایی رو من ما گرهوانمیشه میخوام فراموشت کنم اما نمیشه آه شبای سرد من چیزی نپرس از درد ما وقتی خرابه حال روستم راهی ندارم با دستین چیزی نمیپرسم ببین دارم تو آتیشت میسوم روزا لالت به هرچی رفته ده این باغذ سنگین بامه سنگین تر از خواب زمستون حالم بده حالم بخته نفس نفس بند اومده دارم میخونم تو خیاما